ای بنامه اورمزد به شاه مهربان مسو صبحو پیروزگر و مینوی عشوابن پر مینوی ورج ابرهرمیزد اشوی برجاوند هماوند پیروزگر آشناوت ر اورمزد هاشم و ویشتمسی وشتا اوشتا مار یاتشای وشتایش عشقم باهو بهش تماس دی، اوشته آستی، اوشته حمایی هیات آشای بهش دایشم. عشقم باهو بهش دی، و آورده که شا. ای بیسرود رم آوی ای بیگی آوی اشالونه نا رای چ فرس از ستای چند رادادوییسپام ح جایی تیز را توشت رو مای چ شاشیرت و یهست نای چ ومای چشنا رای چپ فر از ستای چند اشا و نام روشی نام غنا نام و نام یایل یا اوض چ هوی تویش اماهچ و تا دهی او راضای بره طرغ نی اهور از آتی و نین تیاز چه و پرتاتو شنات را یسنای چه و همای چه شنات رای چه فراسسته ایچه یتا اهور ایر یز آتا فرا ممروتی اتا را توش اشاد چیت هچه فرا اشه و بیز باب را تو اهور مزدام اشه و نمشه را تو مجزم ایده زرت اوشتر اشوانم و شهیراتوم یزمهیده زرت اوشتر اشانو فروشیم یزمهیده همیشه سپنته اشانام یزمهیده اشانام بینکوی سوراو سپنته افروشه یو یزمهیده هست و تو من اخیاو چپنو تم امرتوام یزمهیده یا ای تو اشتمم یزاتنا امنگ نوشتمم اشی رات و ام ای بینه ساستم جغم نوشتمم اشاون و اشی رات و رتو فری تیم یزمعیدای ای می سرو ترمم اشوانم اشی راتوم یزمعیدای ای بی گاو یم اشوانم اشی راتوم یزمعیدای توامات رم احورای مزدا و پوترم اشوانم اشی راتوم یزمعیدای هز اوترم حذ او انکانم ایمت بر اسمشه یا فراد درتهشهنم اش رات یه میده او پ اوید از میده، راتوم و راتوم موترمپه مشهوان مشه راتوم یده گوشوروان مشهوان مشه راتم یازده ذرا تووش رو مم اشیراتوم مشه راتم یده زره تووش مشهوانه مش رات یازده اوه مشهوان ویم شویہ پیتی یبانم هو مننگ هم هو با چنگ هم پوشکی، آتره ام هو, هو ديره عشوهى ام 헤هراتوم یز مأیده یبانم اوخزو با چنگ هم عشوهى ام عشاورتوم یز مأیده خوط با ایتما عشوهى ام عشاورتوم یز مأیده ده ای اینجا و رو證ه ام او ما این پی نمشه ونمشهرتوم ی میده ما و نهین ما اونو پی تیمشه ونمشهرتتون ی میده نایر کام چه شانیم میده فرای و اوومتم فرای و اوختام فرای وورشتام او شام ساستتون ر توخش را وشاونیم یار می ت ب یاست چه تغناو و حوررم از داوناررم چه وشه ر از میده فرا و اوم فرا و حختم فرا وورشتیم ویست و فر ای تیم ایست وقییم ی کی آوتنایش گ تاشه اون فراون تزرت اوشت رو معرت و اسناشه وما چ زرت وشت رو مم چ شود شیراتم رات یاده. ازشا اوام ب کوی سواز بتاب یو یهزم ایده، غنااز چوی رو و یهزم ایده یا یام چهوشی تیم یهزمه ایده همه چه تا مرازم یهزمده بره طرغنم چههور از آتم یهزمده، و نه این تیم چاو پر تم هازده. توام آترم اورم از دا پوترم اشه مشیراتم اشه راتم یزمه ایده هز از آترم ایمت بر اسم اشه افرستره تم اشه ونم اشه راتم یزمه ایده افام نبتارم یزمه ایده نیلی و سنکم یزمه ایده ایریستن آموروانو یزمه ایده یاشان آفراوش ایام ratum prezentem یا تو آهو وری آثارت و شش آوت چیدا چاون ون کیوش دز دام نین خوش یاوت هن نامن کیوش مزداایی شترم چا هورا یاو یم دریگوب یاود دادت واس تارم یا تو آهو وری آثارت و شش آوت چیدا چاون ون کیوش دز دام نین خوش یاوت هن نامن کیوش مزداایی شترم چا هورا یاو یم دریگوب یاود دادت واس تارم چا وامم چاو جس چاز بر چاوف رنامی آشاء نام فراشینام غناو نام چه ویرا وانت منام آریا از چه وشی تویش اما چه اوتاش تی اورا از ای برات راگنای چه اورا زاو تای مننتیا از چه افراد آوتو آشن بخو باش تا مسیوشت آوستیوشت اهماهی هیتشا ای باش تا یشن احمای ریشا خورن از چا رحمای تن بود رو تاو تیم تن بود وز درای تن بود رس ریم احمای شتم پروش خاطرام احمای استم چی ترا رازین تیم احمای در قام در قوجی تیم آمایی بایستم آم شونام راوتن که ویسفا خاطرم و هوویشتم استی وشته استی وشته آماییات آشای بایستای آیشم. هزینگرم بهش زنام بی وری بهش زنام هزینگرم بهش زنام بی وری بهش زنام هزینگرم بهش زنام بی وری بهش و جسم یوین که مزده جسم یوین که مزده جسم یوین که مزده امه اوتاشته ام او رازه ای بره تراغنه او رزاته ای بنتیاز چوب رتا تو تبا شیخ ذاته زربانه یک کرنه زربانه ی درقو خزاته اشم بهو به ایجتمستی و اشتاستی و اشتا همباییت اشایی و پیروز بیروزباد خروح عوی جای وحدین مازدی اصنان پیروز باد خروج هایی جای وحدی مازدی دیاس پیروز جای وحدی نماعز دیاس و از و دانم کام باد باد ترج باد. با دیدن با دیدن تشر و هوایش نمیسی است از تو است احباری